من یه بچه ی بلاگرم یعنی چی؟ یعنی اصلا تو دنیای وبلاگ به دنیا آمدم من روزی که مهاجرت کردم به دلیل تنهایی تنهای یک مهاجرتی شروع کردم داستان سرایی در مورد روزمررم در روزهای مهاجرت یه دختر 16 17 ساله بودم. که شروعش کردم سال 2004 یه وبلاگ باز کردم در عین خلاقیت اسمش رو گذاشتم هدا 2004 @cyprshian.com یا @chipershian.com persianblog.com و اون موقع در مورد داستان‌هایی که می‌دیدم در روزمره داستان کوتاه می‌نوشتم. دو دلیل داشت یک تازه مهاجرت کرده بودم دلم می‌خواست زبان فارسی بزنم. دو، دوست داشتم همیشه داستان رو خب و برای من وبلاگ نویسی، بلاگری، اینستاگرام ویبلاگ داستان سرایی برای من هیچ وقت چیزی کمتر یا بیشتر از داستان سرایی نبوده من خود میدونم، میتونم، میتونستم از تبلیغات ریز و درشت خیلی پول بیارم که نکردم اشتباه خودم بوده ولی بیشتر دوست داشتم حتی تبلیغاتم با داستان باشه یعنی اگه من میخواستم یه تبلیغ بگیرم یافتم اینم کدومش داستانی تره؟ رفتم تبلیغ فرشو گرفتم از یارو خواستم که داستانای فرشاشو بگه. اگه تبلیغ کارخونه گرفتم دوست به جای اینکه بیام تبلیغ پروڈکتشو بکنم اتفاق توی کارخونهشو داستانی تعریف کردم. من اگه سفر میرم داستانهای سفرهای میگم. حالا میخوام برای اولین بار داستان زندگی این داستانگو رو بگم ببین هدا یک خیلی اوج شبیه بازی مافیا شده یعنی یه دیت یک دیتای آدمایی که تو رو میشناختن داشتن بعد یک سری دیت دیگه اومد بعد دوباره نقزه اون اومد بعد اصلا آدم نمیدونه الان کی مافیاه کی یه حیولام از تو ساخته شده کی شهرونده کی مافیار کی چه جوریه اینو برو که تو شهروندی واقعا یا مافیایی میخوای اصلا از این شروع کن چون الان امروزی که دارم با تو صحبت میکنم واقعا این بحث شهروند بودن تو که تو عراقی ایرانی پاسپورت این هم فوش کرده بود این همه سال برای پاسپورت سعودی که این پاسپورت سعودی داره میتونه بره این اونور و اشغال کنه ما نمیتونیم الان میگن عراقی، این داستان چیه؟ اینو یه ذره اشکاف برمان آیای من میخوام با این داستانمو رو شروع کنم در واقع الان این هجم هایی که بیننم با یک چیزی میخوام، با یک جوکی میخوام براتون شروع کنم یه روز یه خانومه سفارش میده با آیا نجاری میگه بیا برای من یک بساز تو اتاقم آیا نجار هم بیاد برش یک میسازه یکی دو روز که میگذاری زنی این هر دفعه که اتوبوس رد میشه این کمد میلرزه میون به آقای نجومی میگه آقا اینو درست کن آقای نجومی میدونه یه بار درست میکنه میره خانوم میگه آقا این هنوز میلرزه دفعه دوم دوباره آقا این هنوز میلرزه دفعه سوم آقای نجومی خودش بولا میشه میاد اونجا میگه ببینم چجوری میلرزه میگه آقا رو تو کمد بشین اتوبوس الان رد میشه ببین چجوری میلرزه یه آقا میره میشینه تو اتوبوس شوهر این خانوم تا میره میشینه تو کمد شوهر این خانوم میاد خونه در کمدو باز میکنه میگه تو اینجا چیکار میکنی میگه اگه من بگم من اینجا نشستم منتظر اتوبوسم باور میکنی <تصفيق> الان وضعیت من <تصفيق> این شکلیه برای همین اصلا نمیخوام الان در مورد اینکه کی باور میکنه کی باور نمیکنه اتوبوس رد میشه پاسپورتو به پاسپورت عراقی میخوایم فرش بدیم پاسپورت سعودی میخوایم فوش بدین به پاسپورت ایرانی میخوایم فرش بدین چون ستاش رو دارم ام... نمیخوام این داستان رو با این شروع کنم که مافیا کیه. بیاین یه ذره برگردین انقب تر ببینین هودا رستمی کیه بعد یه شخصیت دیگه هست هودا جبار کرین کیه دو تا آدم رو رو رو نشستن که دوایی یه صدا حرف میزنه هر سوالی به پرسی از ما جواب نه خب این بگردان خانوادگیه یعنی این داستان اصلا مهاجرت الت این لب... کجا... مال کجان پدر و مادر داستان این اگه دوست داری. الان من میخوام من هدفم تو این پادکست چیه ؟ قسمت اول پادکست ودار استمی من میخوا خودم را بکشم. منظورم از خودم چیه؟ منظورم از خودم اون هدارستمیه که آدما ازم آنلاین دیدن میخوام یک بار تمام این داستان رو باز کنم حالا یا میمیره یا زنده میشه یا, یا آدم دیگه زد... کنارش زنده میشه این رو نمیدونم ولی من دوست داشتم همیشه دوست داشتم که یه سه چیزها رو تعریف کنم الان وقتشه تصور کن یک دختری تو تهران به دنیا اومده که منم مادرش تو بغداد به دنیا آمده پدرش تو بغداد به دنیا اومده. پدرش بله. کردن بس چه کردن؟ ایرانی الاصل هایی که یک روزی صدام تصمیم میگیره هرچی ایرانی الاصل شیه است و اخراج کنه من تنها نیستم تو ایران ها ما تقریبا فکر کنم توی کل جهان یک میلیون معاودین معاودین گروه هست گروه از ایرانی الاصل هایی که صدام اینا رو اخراج میکنه من که اصلا اون اخراج میکن از کشور خیلیاشون فرار میکنم میان دم مرز خانواده مادری، خانواده پدریم رو ندارم، خانواده بوداریم اومدن ایلام، مثلا کرد ایلام بودن، اسم فارمیلشن آغوستانی بوده، هیچ برمی‌گردن، مادری من از این خانواده بودن که داستان شو بودن، میکنم کنم که با چه بد وقتی، ولی یه میلیبوس میاد جلو در میگه بریزین و میریزنشون دم مرز، میمونن دم مرز و مدت‌ها دم مرز تو چادرها یا تو یک چیزایی که اونجا ساختن کپرهایی که اونجا ساختن میمونن تا وقتی که ایران راهشون بده تو پدر بوزو من اونجا سکته میکنه به خاطر از ترس اینکه 5 تا دختر یا 4 س... تا دختر من هیچ وقتم خاله‌مام درست اندازه‌اشون یادم نمیاد اون موقع 4 تا دختر که مامان من بچه دومه به هشت سالش بوده یا نه سالش بوده فکر میکنم نمیشتم میگم سنش کم بوده چون مدرسه بعدن تو ایرانم ادامه‌شو میره از ترس اینکه سربازه عراقی بهشون تجاوز نکنن شبا روی دختراش میخوابیده تا وقتی که ساده میشه و اینا میان تو ایران و یه سری اشاشونو میکنن تو همون مرز که الان مرزه جایی که ما بزرگ گم میکنن هنوز هست سومار سومار محل ورود خیلی از موابدینه ما هنوزم اونجا زمین داریم تصور که این دختر تو تهران به دنیا میاد اصلا اولش که خونه عربی و فارسی حرفی زده می شده داستانش با... اصلا داستان شما بیشتر عربی میشنیددم عربی رو مامان و بامان با هم عربی هم میزدم با ما فارسی حرف می زدن. منو بردهم بودیم. من اولین بار یه وقتی فهمیدم که فرق میکن که دیدم چیزای چیزهایی دیگه ای می میخوان به چیزهای دیگه هست با برقی ما فرق میکنیم. کم کم خوب متوجه شدم چه فرقای میکنیم و اینالی میخوام داستان آنجاتون شروع کنیم. یه روز. تو مدرسه روز اول کلاس روز اول... روزهای اول کلاس اول نازموند درو باز کرد گفت دفتر بزرگ اومد تو گفت رستمي من هم بلند شدم گفت شما عراقین؟ گفتم نمیدونم اره فکر کنم گفت فردا به مادر با کارت سبزت بیاد اینجا من اصلا اولین بار فهمیدم چی چیزی هست اسمش کارت سبز که حالا بعدا فهمیدم چیه من به مامانم میگم فردا بیاد زنگ خورد زنگی تفریر رفتم توی حیات مدرسه دیدم کجایی پیرون بودیم؟ من خیلی یادم میمید من اینقدر حافظم الان ضعیف شده توی جاها و اینا که فکر میکنم دلیل داره حالا بذار من داستان داریف کنم من زنگ تفریر رفتم توی حیات مدرسه دیدم بچه ها از من نگاه میترسند من میرم سمت کی میرم فرار میکنم میرم اون برای حیات بلاخره یک کم جیغداد و یک کم شوخی خنده اما فکرمم شوخی میکنم یکی گرفتم گفتم فلان چی شده؟ و مگه نمیدونی مامان ها بابای فلو کشتن بابای فلانی یک شهیده ما یک فرزند شهید داریم و من به عنوان یک عراقی که هیچ وقت تو زندگیم عراق نرفته بودم و اگووی ایرانی ااصل بودم که صدام من ما رو و خانوادم اون بود و کل ای اخراج کرده باور کردم که مامان اینا، یکی کشتم به من نمیگن من این قدر که یکمتر از اون مدرسه منو عوض کردن از اون موقع یاد گرفتم هیچ جا نگم من عربی بلدم یاد گرفتم اونجا هیچ وقت نگم من عراقیم اتفاقی که جالبه حتی الانم با همون هجمه ها روبروم یعنی چی ریختن تو پیجم میگن عراقی؟ اصلا عراقیم مشکلش چیه که عراقیم بعد اینو ربط دادن به یه چیزایی که اصلا نمیدونی چیه من اولین بار اینجا یه سریه چیز داشت تویطوریش رو فهمیدم بابات هشت و شعبیه. فرمان بابای من 28 سال پارکینسون داره 60 سالشه به عنوان اولین کسی که فکر میکنم تو ایران حداقل تو جهان یا هم نمیاد چنده ولی فکرم حتی دو دنیا اول بود 28 سالگی پارکینسون دیگناس شد یک کارمند بود کارمند صدا و سیما اگه همه کسی که تو صدا و سیما منظورم اصلا خب بابای منم گویا با به عنوان یک مترجم مترجم زبان عربی چیزی که بلد بود رو استفاده استفاده کرد. تو به عنوان یک کارمند پارکینسون گرفت مامان خونه دار چند تا بچه سه تا بچه چی کنیم چیکار کنیم به بابام گفتن تو باید بری برای درمان و بابام که دیگه از کار افتاد و افتاد توی بیمارستان اول نفهمیدن چیه و بعد گفتن آما پارکینسونه باید بری یه کشور دیگه که یه بالاتره و این و اونو من یادم نمیاد دقیقاً چی شد چون سیزده سالم بود، دوازده سالم بود، چهارده، نمیدونم بابام رفت سوئد، بابام رفت سوئد چرا؟ چون بیمارستان کارولینسکا قبول کرد بود به یک کیس استادی بابای منو بابام رفت سوئد یه سال من دو یه دفعه زنیزا به مانا که خانم جون باید بیا اینجا من گوید قرار بمانم تا عبد اینجا میگن هیچ وقت خوب نمیشی. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ می‌کنیم که نمی‌کنیم؟ ما پولی نداریم مهاجرت کنیم؟ یه واقعیتی توی سوء. اینو بگم که قبل از این داستانه که چجور شد مهاجرت کردیم یه دقیقه برگردیم که من بگم براتون که اون دختر بچه وچه 7 ساله فکر کم بودند 10 سالش بود که یه روز باباش شومات خونه بابایی که رفته بود جنگ بابایی که رفته بود جنگ ایران و عرب برای ایرانی جنگیده بود چون همیشه ساده متنافر بوده. بعدن که داعش هم حمله کرده بود فلان باز از صدام و داعش متنفر بوده توی یک روزنامه اسم شرق الاوسط هم کار میکرد فکر میکنم اگه درست یادم باشه شرق الاسد. همیشه بابای من زد به حزب بحث بوده چون کسی بوده که اخراجشون کرده بابای من دوستایی داره که بعدنا که اخراج اونا عراقی بودن اونها هیچو اخراجشون هن شدن هنوز که روز یادمه یه آلبوم داشت به اسم شهدا دوستاش بودن دوستای عراقیش بودن که ازو بعث کشته بوده هنوز که هنوز من یادم میاد عکساشون یک سری آدم بودن که حاضر نبودن فقط سیویل بزنم و بسی باشن و کشته شدن و بابای من همیشه از اینا متنفر بود اگه من نمیدونم هشت و شعبیه اگه فلانه اگه آمریکا اگه هر کسی که اومد عراق حتی اگه ایران و هر قدرتی تو ایران داشت کمک میکرد که صدامو نبود کردن بابای من حتما باش بود نمیدونم من اینا رو یادم نمیونم بچه بودم پاسپورتمونم که گرفتیم که دیگه پاسپورت شناستمم اون که من گفتم 10 سالگی بالاخره بابام یه روز اومد خونه گفت ما تونستیم بالاخره ثابت کنیم یا ایرانی، گفتن کارت سبزار رو قرار قرار فامیلی همونو برگرنم به اونی که اصلیه رستمی ولی رو کارت سبزار نوشته بود هدا، فرزند جبار، نام پدر بزرگ کریم چرا؟ به خاطر که تو عراق که فامیلی نداریم، اسم پدر و پدر بزرگت، میشه فامیلیت بعدم که رفتیم اموز کردیم شناسنامون رو گرفتیم هدا رستمی بعد گفتن آقا نه این رسته رستم داراستانی هست. اینجا میگن سبدحال بود. یه چیز دیگه‌میش اضافه کنی. همون یه اس گوزشین کنارش همو شدی. خدا رستمی اصلی یعنی ته اورجینال. ولی واقعا اون اورجینالی رستمی بود من از اول. بخاطر اینکه گفتم پدرام که اومدن ایران از اول اینجا چیز داشتن. میکرواملاکی کورد کورد بودن دیگه کورد عراق و ایران بین عراق ما رو تو مرزی مهران مرز ایران و عراق. یه اینا اومدن و دوباره ما شدیم. من شماسا میگفتم اسم خدا رستمی هست که این ده سالگی بود ولی چهار ده سالگی که بابام گفتش که آقا باید بیاید سوئد اون وکیله تو سوئد گفتش مامان،, مامان من یعنی زنت خانومت مگه عراقی الاصل نیست الان عراق تو جنگه اینو هر جور رو برسونن سوئد میشن اینجا مهاجر مهاجر اجتماعی شما مریض اینو مهاجر اجتماعی مامانم هم گفتش که پاشیم بریم شناستنم اونو شناستنم اونو چون تازه اگه یادتون باشه دو هزار این سه اینا صده فرار کرده بود ولی نگرفته بودنش و مرزا باز شد من میخوام اینجا این رحظه اصطاب کنم از این داستان ها و یه داستانی رو بر خودتون تعریف کنم حالا هم شایدم بردسته تا من یادمه ما بلند شدیم با اومد سوئد با حالت مریضش بلند شدیم رفتیم مرز مهران رفتیم بارد عراق شدیم که از مهران تا بغداد یه جایی راننده برگشت گفتش که سراتون میبوی سراتون میبوی ما هم رفتیم پایین یه دفعه خودش یه ترسه یه ترسیدنی داشت ونا گفت اینا ببینن خارجی شما قیافه‌تون مشخصه خارجیه ما الان تو یه کشوری هستیم که خارجی ببینن با جاش با راننده با همه چی فقط میکشن که هر چی خمینی دارین ازتون بگید گفت خمینی چیه گفت خمینی دیگه خمینی سبزتون به هزار گفت و به عنوان ایرانی اون موقع خب چیز بود خیلی ما ماینگا پولدار به حساب می اومدیم ما رو ما با ترسی رفتیم بغدادو دیگه اینکه چیکار کنین چی الان داریم میرین بغداد چیکار کنیم؟ داریم میریم که شناسنامه عراقی مامانم و هویت عراقی مامانمو دوباره برگردونیم صدام رفته ما هم عراقیم هم ایرانیم پس ما میتونیم جفتشو بگیریم دیگه شما وقتی تو کشور دیگه به دنیا بیای و اون کشور حق اینو بده که تو این خاک دنیا اومدی به سراغ توی شناسنامه‌ش رو بگیری مامانم رفت شناسنامه‌شو گرفت و به واسطه گرفتن مامان من ما هم شناسنامه زیرمجموعه 18 زی سال کمتر بود دیگه شناسنامه عراقی گرفتیم و به واسطه شناسامه پاسپورت عراقی اون رفتیم سوئد و من تو سوئد به اسم خدا جبر کریم هم گرفتم همیشه من تا آدم بودم هیچ وقت از این دو آدم استرس نداشتن کجا استرس نداشتن وقتی که دوستام بودن همه دوستان میدونن وقتی که مثلا دفتر سفر فروختیم روی سایتی برای خارجی‌ها اسم من هست پیپلا من همه اونه که پول دادین دفتر صفحه از اون خیلی اسم با کسی که فرست دادین هدا چرا خدا جواب که هدا کریم ها فرق چون مثل سوئدیا که آنا کارینا یونسونه وقتی که اسم میدل اسمشو برداری میشه و آننا یونسون همیجا میدل اسمو برمیدارند منم میشودم هدا کریم تو اسم کارت بانکیم نمیدونم هر جایی که ببینی خارج از ایران من هدا کریمم همه ای کسایی که تور با من اومدن مصر یا هر جای دیگه ای گویتمالا، کنیا گلم بخواهد هر جایی باید اسم هدا کریم با من سبتنام میکنن هیچوقت ها داشت نترسیدم اون اسم اون زندگیمه یه اسم دیگه هم داشتم هدا رستمی چرا تو ایران ازش فرارم میکردم؟ همین الان نگاه کنم من اگه بگم عراقیم یا میزننن کامنت گذاشتن عراقی کسی اصلا عراقی بودن. مثل هر کشور دیگه ای اصلا خجالت نمیکشن آدما لفظ عراقی فوشه من یاد من همین الان برگشتن به زیر زیر اون پوست اون آد بود هفت ساله ای. که که یک بار دیگه هم حالش بد شد کجا بیایم بریم سفر عراق سفر عراق رو یه یه ذره توضیح بدم من 14 سالم بود سفر شناسنامه ش... سفر شناسنامه این سفر شناسنامه هشتگ سفر عراق منو سرچ کنین چهار پوستشو شروع کردم تعریف کردم که چه اتفاقاتی داره میفته تعریف کردم که داشتیم میرفتیم در ب... بکراند که مامانم به رود که رسید قلبش درد گرفت و گفت برگردیم اصلا دلش نمیخواست اونجا رو ببینه عکس صدام هنوز صدام فرار کرده بود نگرفته بودنش ولی تو روزنامه که ساندویچ کردن که پیشون عراقی تو روزنامه میپچن گس yes. ساندویچ رو میپشنا یه تیکش اش گوشت صدام مامانم غذا رو نمیخورد احساس می کرد داره بالا میاره مامان بابا من برادر خواهر ما رسیدیم بغداد حالا بماند که گشتیم دنبال آشنا ما اینا قبلش قبل از اینکه بریم بغداد مامان بزرگ من که با یک ایرانی ازدواج کرده مامان مادرم عراقی اصاله با ایرانی ازدواج کرد این پدره پدر بزرگ من اومده بودن ایران و یک روزه بدون خدافزی با هیچ کسی مادربزرگ من یه خواهر داشت و داره فکر کنم منزگینم مرده باشه که این با یک مرد عراقی ازدواج کرد که اونها هیچ‌وقت اخراج اخراج طرف هم چیز بود یک عراقی بود مامان بزرگ من بله شوهر خاله‌ی مامانم مامان مووع که من گفت حالا که بعد از سالها مرز با شما در به پیداش کنیم بماند که لحظه ای که ما پیداش کردیم بعد از مدت یک مای که حالاواایستایم که پاسپورت و اینا رو بگیریم و اینا ما تو عراق سفر رفتیم و خیلی شهرار دیدیم و توی رودخونه شنا کردیم با عرااقیا و همه ای رو بمانند روزی که ما این در قدیمی سبز تی کوچه رو مامانم رسیدجلله در در زد و یه خنم اومد بیرون به عربی گفت شما عنی بفرماییم ده. مامان من یه استرسی کشید گفت سلام خاله و یادمه که دو طرف کوچه با وی وی کردنای عربی مویه عربی خاله مامانم مامانم تمام مردم کوچه اومده بودم بیرون کوچه خیلی باریک بود از بالا به همه داشتن گریه میکنن هیچکی نمیدونست برای چی گریه میکنن حتی خود منم دقیقا تو اون چهار سالگی نفهمیده بودم کیو بعد از چندین سال پیدا کردم ولی یادم میاد ما سه روز اونجا جمع شدیم تو خونه خاله و همه میومدم و هرکی کی میرسید گریه میکرد. کرد تا اینجای داستان من مثل یک فیلم رو نگاه میکردم. کی برای من این اتفاق عجیب شد خاله مامانم یه چند تا بچه داشت لحظه به لحظه این بچه ها میومدم می, می آقا بیا خونه ما بیا خونه ما دونه دونه این بچه ها... هی hey, ما رو دعوت میکردن یکی از این بچه ها بود که ما رو دعوت نمیکرد یه, خ... یه خانوم خانم دیگه مصحمشو مصن شد دادن مثل مامانم مامانم مصن نیست مامان مامان غلط کرده <تصفح> ما رو دعوت می‌کرد خونه یکی از این رو دعوت نمیکرد مامانم پرسید این چه ما رو گفت این شوهرش مرده فلان شده بسار شده این جزه. خیلی وضعشون بده بالاخره به زور رفتیم خونه اینا ما تو یک خونه چون وضعشون بد نبود خوب بود واقعا خانواده خاله همه وضع خوب تو من یه باقی که نمیدونم تاب داش فلان داشتن من اولین بار تو زندگی اونجا ماهواره دیدم اصلا ما ماهواره داشتیم ولی ماهواره عرب سات ما رو اوروبا که نداشتیم اونجا اولین بار ماهواره دیدم خیلی خوش میذاشت حالا خلاص رسیدیم خونه این آخرین دختر و من نشستم رو مبل و چشمم خورد به عکس یک آقایی که گویا شوهر این خانم بود که زیرش نوشته بود شهید احمد فلان کلمه شهیدو که شنیدم یاد بابای فلانی که مامانم کشته بودش تو مدرسه افتادم و همونجا حال رفتم. از حال رفتی؟ پنجاه تا آمپول بهم زدن اونجا تو عراق تا من حالا خوب شد پنجاه بار نمیدونم آمپول چی میزدم ولی یادم یه یاد سوراخ سوراخ شده بودم. من بعدنا فهمیدم اصن شهید چه چیز دو طرف است اصن کاری نمیدونم که کی, کی می‌جنگیده بابای من خودش رفته جبهه ز دراغہ جنگیده همش از عراق میاد. ولی شوهر خواهر خاله یه نمیدونم که مامانم که, مامان که شوهرشم عراقی بوده که تازه خود این خانم به صدام فوش میداد. میگفت شار منو به زور بردن. میگفت سرباز بود به زور بردنش. شهید شده اسمش اصلا مثلا زولینم بار فهمیدم دو طرف مرز به آدما میگن شهید. شهید چیه دو طرفیه؟ من تا الان اسم کوچه شهید بود میترسیدم تو من تا ده سالگی باور نمیشه از کلمه شهید میترسیدم. فکر کنم نه سالگی دیگه فهمیدم مامانم اینا کسیو نکشتن یعنی 79 من باور کردم که کسی گشتن. خب این دختر با این کامپلکس ها رفت سوئد رفتیم سوئد نمیدونم اولا اگه خواش سوالی بپرسیم. من منم جو حرف میزنم سال بپرسیم. نه اوکیه ولی حایرتش واسه بابا واقعا نیازی نیست سوال بپردی آره ولی چون یه چیزیو باز کردی من دارام بعد ببندیش که اون پدرت چه سال رفت جنگید و چقدر جنگید بعد خود اولا که من اولین بار دارم اینا وقتی پارکینسون گرفت پارکینسونش بازدارنده نبود که میتونست بره بیاد همه چی بازار نیست چی؟ چیه انانددادین که مثلا بره در کار بیرون یا نه هم دیگه باقا الان ویلچریره الان الان, الان, الان چریه با 28 ساله که پارکینسون داره پارکینسون اگه میدونین من سن چه و پ و پاهبه بالاه کسی که تو گفتم 28 سالش توم خم... 20 خورده ای سال دو ساله از 28 سالگی پارکینسون گرفته یعنی الان که 6 سالش 32 ساله 22 سال خیلی سالا چون از وقتی یادم میاد بابام مریض شده خب همین همینجوری داره ضعیفتر میشه دیگه اول که دستش میلرزید بعد شرکت پاش لرزیدم بعد دیگه حرف زدنش رو از دست داد کم کم نمیدونم بابا کی اینا رو و چقدر الان دست من از من قبلش از مام بابام اجازه گرفتم که به حال چیزای خانوادگی مو شیر کنم گفتم آقا من میخوام بگم خدا کریم کیه خدا رستمی کیه جفتشون کیان جفتشون کسی نیستن جفتشون یکی همه اینا بیاین بریم سوئد آه هم خواستند دیگهم بابا من نمیدونم چقدر جنگ بوده بابام صاسیمایی بوده بابام نمیدونم با 80 شبی خوبه بعدده چون هشت شبی ضد داعش جنگید من یادم میاد۱ ره که داشت تو عرا بود خب به یک نیروی دا شما رو اخراج می کرد و که بابا من موافق اوا بوده بوده من چه میدون ولی تو اوج این بیماری بوده بله بابا میگم خ من الان هاکییننسون داره. پدر من الان پارکینسون شدید داره با ویلچر اینور برم اونور میشه بعد از چندین چ... بعد از چندین سال در واقع هی داره داشت چیز داره. قرصاشو هی عوض میکنن به, سا... به دو ساعتی یه بار قرص رسیده دو ساعتی با قرص نخوره نمیتونه این زندگیش بر اساس قرصهای دو ساعته هست و دیروز اما باز رفتیم توی بیمارستانی تو ایران همین جوری که ببینیم چه اونجا که تحت کنترله رفتیم ببینیم که چی برگشت به تو روی بابام گفت پارکینسون مثل یک عروسکو کی میکنه ادمو اول هی کوکت خوبه رو میری کم کم کوکت خراب میشه هی باید قرص بخوری هی ضعف‌تر میشه هی میشه و من دیدم که پدرم در همون ویلچرش هی بیشتر و بیشتر فرو میرفت 60 سالش شست. من اینو برام خدا میگم الان ایران زندگی میکنم نه پدرم اصو زندگی میکنه همه, همه خانواده این تازه رفتیم بیمارستان اومده که سر بزنه آه. بعد از چند سال چون به زور میاد دیگه به زور میاد و میره هوا و هواپیما و عزید. پدرم من سوود زندگی میکنه مادرم هم زندگی میکنه خواهرم هم زندگی میکنه اون آدرسی که در آوردن گذاشتن اون ز خواهرمه با شوهر سوئدیش زندگی میکنه نمیدن اینا شاید اصلا دیگه ناد بگم فکر کنم مشکه نداشته باشن یه برادر دارم که سوئد بزرگ شده اصلا کلان زندگیش ایران نیماده تا الان تا الان نییمده و خیلی جالبه پدر و مادرم خودشون عراقی میتونه من خودم و ایرانی می دوم بردم خوش سوئدی ما تو خونه مامان و بابام با هم عربی حرف میزنن با ما بچه ها فارسی حرف میزنن ما بچه ها با هم سوئدی حرف میزنیم و بابام بزرگامون کردی حرف میزنیم. من با داداش کوچیکم چون از اول برای اینکه انگلیسیش خوب بشه انگلیسی حرف زدم همه چتاب اون همه حرف زدم با داداش کوچیکم انگلیسی هم. یه خانواده حس میکنم دموکراتی داریم چرا؟ چون مامانم هجاب سرشه من معمولا شلوارکم با تی شرت والا تو زندگیم این همه به لاگین کردم فکر کنم هیچ جای عکسی نمیدن که چاک سینهی من بیرون باشه من فکر می کنم اگه این همه چیز دروردن برن هزار و سی خورده عکس من رو نگاه کنم و چندین هزار عکس من توی سفرام ببینن جای سینه من مشخص بوده من همیشه اینجوری بودم که آقا شلوارک یه چیز یک تیشرت یه چیزی روش همیشه به خاطر اینکه سرم خاک نگیره مامو درست نکیام یه لچکم می‌پستم به سرم حتی پروفایلم هم تو سفر اصلا فکر نکردم ایران باشه یه لچک رو سرمه چرا چون من به حجاب اجباری اعتقادی نداشتم تا جایی که میتونستم سعی می‌کردم مدل خودم لباس بپوشم مامانم به حجاب اعتقاد داره ولی نه هجاب اجباری خواهرم؟ اصلا عین سعودیاس بیکینی سه سانتی میپوشه و من و مامانم و خواهرم با هم میریم لب آب لب س... یعنی ساحل میشینیم یه خانواده فکر میکنم دموکراتی هستیم برای اینکه با اینکه یک ای خانواده سنتی حساب میشیم برای اینکه با اینکه مامانم دار بوده بابام مثلا کارمند بوده بابام خیلی اهل قلمه ها بابام عاشق ترجمه کردن شعر های نزار قبانی و شعرای عربی به فارسیه. بابای من همیشه کتاب میخونه، ما همیشه تو دو یادم میاد ما مریض میشدیم برامو شعر میخون. شعرای فارسی، شعرای عربی. مامانم میزد تو سر خودش میگفت بچه مریض شده، باشه بریم بیمارستان. میگفت یکم حالشو خوب کنیم. ما همیشه ملو بوده. به بابام افتخار میکنم. حالا من کارنام داشت چیه؟ من اصلا اعتقاد بابام قبول ندارم ولی همون قدی که یه وقتی من جلو بابام وایسادم گفتم بابا من اعتقادات تو مال تو، اعتقاد من مال من. از خود مامانم مال خودش مامانم میخواد حجاب بذار شما میخواید نماز بخونید من حجاب نمیخوام داشته باشم تو همون سویت اولا به من گفت حجاب بکن اینو حجاب فکر میکنم خانواده مدرسی داریم هیچ کسی مامان ما نگفته چی بپوشین چیکار کنین مامان من ماما این این خیلی مهمه فکر کنم هیچ کسی یاد ندونه مامان من کار داوطلبانه میکنه در کلیسا یک خانم معجزه است که نماز رو کلیسا میخونه چرا چون اونجا کارش چی بوده آشپزی بلد بوده کلیسایش میگه آقا دنبال کار میگه آدم ادم وقتی کار نمی کن. تو صد باید یا اینجوریه که به ادم ها پول بدن که اگه مریضی شاید یه بخورنمیره بهت بدن که بی پدرم میدن وگرنه باید کار کنی هر کاری به شرط مامانم نمیدونم انتخابش بوده که بری کلیسا و ولی الان خوشحاله هدف میاد به من میگه که این دیاکون این شکلی شده دیاکون به چیز میگن به اون پرست. چیز. اینجوری گفته به من یکبار در مورد هجابم سوال پرسیده برش جالب بود که در بعدش اینام در مورد دینای فلان اصلا و تو خونه اصلا این چیزا نیست اینقدر اینقدر، ولی همیشه ازش خجالت میکشید من هیچ کار از دوستامو نبردم خونه ما داره که فکر میکنم خونه ما تور اصلی هر جای خونه ماه چه جوری سر میزینم زبون هم با هم حرف میزنن تازه زنن شوهر خواهرم که سوئودی هست اون صوددی حرف میزنیم یعنی چند تا زبون خجالت چی بود از عرب بودنمون خجالت میکشیدم اه. بله تو این همه سال همین الان تو رو خدا بارو اه. کامنت های پوست آخرمون ها رو... من نگاه نکردم خودش گفتم پاک کردم ولی یک بار چند روز پیش که گفتی یه چیزی رو چک کنم رفتم که ببینیم رفتم چک کردم چند روز دیگه دیروز هیچده ازار خورده ای؟ کامنت هایی نیوست عراقی عراقی کسیف عراقی مزدور تو اینو رو به چند نفر بگن ودت میاد از دراقی بودانت؟ بدم نا. نه. این که نه اینکه بگم اون موقع که دختر کوچولو بودم خجالت میکشیدم. الان با افتخار میگم مام بابا هم معاود اصلا من بعد از این داستان یه انجامن معاودین عراق تو ایران درست میکنم داریم فکر نمیکنم چون من میدونم چندین و چند دختر رو میشناسم که معاود عراقیان نسل ثومی هنوز خجالت میکشن زینه اگه صدای منو میشتری کاش براشون بگی که تو دختر شهیدی هستی که اسم کوچیتون شهید فلانیه ولی خودت نتون شناسایی نداری چون نتونن کارت سبزشو چون پدرش نتونه ثابت کنه که ایرانیه ای دختری 10 12 روز پیش یه چیزی نوشت بعد تو اینستاگرام بعد دیدم عکسی پسر 13 14 ساله‌ای گفت اینو بخون و بفهم گفتم جریان چیه این بچه دیروز خودکشی کرده گفتم از اراک گفتم چرا گفت این تو تیم boshka هی می‌رفته بالا هی می‌رفته بالا هی تو 40 تا اومده تو 20 تا تو 18 تا بگفتم خب حالا شما میایم اردو چیزاتون بیارین من بچه نداشته همین الانو سال 1401 یگوبه من خب آخه به امور شدن هست من نمیبینم الکی نیست من میگم حالم بد بوده تو به یک آدمی که یهود دیده آینده ای در فوتبال ایران نداره و زندگیش در ایران بچش 13 سال خوشی کشیده چرا فکر میکنی من این همه مدت برای تو حدقس و و برای روانکاوی هایی که داشتم تعریف میکردم از حال بدیم بالا و با پایین بالا و با پایین میگه یک بچه چقدر میتونه یک چقدر ظرفیت میتونه داشته باشه که بهش بگن ایرانی عراقی هستی ولی میخوای نگو شما میدونی شناسنامه نداشتن یعنی چی نمیدونین شناسنامه نداشتن برای کسی که الان میزنش برو تو پاسپورت سعودی داری میدونی یعنی چی وقتی رسیدی سوئد الان دیگه تو رو خود از نگاهی آدم دیگه نگاه کنیم مثلا بودرسامی بودا کریم رفته سوئد تمام کلاس کلاس دانشگاهشون دارن میرن استرالیا چی شده اولین سال دانشگاهه گفتن شش ماه دوم دو اکسچنج استودنت میتونیم بریم پرث استرالیا تو سمستون صد که همه جا تاریخ گزرده یه کلاسی رو میخوان باز خزینه دانشگاه بفرستن استرالیا ببین چه دردیه که تمام کلاست باهاشون بری فرودگاه تو ویزا نداری با پاسپورت کجایی میخوای بری تو اصلا ان اس پاسپورتی نداری با پاسپورت مادر اون موقع پاسپورت همراه مادر اومدی سوئد یه اقامت اینجا داری پاسپورت ایرانی هم که نداری پاسپورت ایرانی هم نگرفته بودم من ما اینجوری رفتیم دیگه تو پاسپورتت کجا می‌خوای بری استرالیا؟ به من گفتن نمی‌تونی بری در واقع چیسکن ریجکت کردن و من تمام اون ها رو تو سوئد تنها باید میرفتم سری کلاسایی که اینا مجبور بودن این حل کنن ببین مشکل ما که بنين یعنی چی کسی پاسپورت نداشته باشه و ملیت نداشته باشه شما نمیفهمید. من ملیت دارم به همه‌شون افتخار می‌کنم. من به عراق به دنیا اومدن مامانم و بابام افتخار می‌کنم، به تهران به دنیا اومدن خودم افتخار می‌کنم، به بزرگ شدنم تو افتخار می‌کنم. خودمو به هیچ جایی نمیدونم ولی چرا اومدم ایران؟ بیا بیا بیا, بیا نو باس کنیم. خیلی خوبه. دینو باس من چرا اومدم ایران؟ 1 سال من... سالگی برگشتی. من نبین، سالش رو باید باید باید، بعدن نگاه کنم نبین دانشگاه بله، من 27 سالم بود، الان 36 سالم، 27 سالم بود، اولین با بزنم هم رسیبیام ایران سالها بود نیمده بودم ایران و با پاسپورت سوئیدی باید میومدم ایران چون پاسپورت ایرانی که نداشتم مثلا نرفته بودم دون کارت ملیم دیگه شناسنامه بود و بعد از اینکه ده 10 سالگی شناس ببین 14 سالگی هم که شناس کارت ملی معنی نداش موقع دیگه با پاسپورت مادر خارج شدی یا بعدش هم باید با پاسپورت سوئدی بیای گفتن که به ما با وام برید گفتش که تو پاسپورت اچ اطلاع اثره داشت ولی برو بگو ویزا می‌خوای بگو پدرت عراقی و مادرت مراکشی راست هم می‌گفتن پدر مادر شما تو ده سالگی به من شناسنامه ندین حالا تازه شدم ایرانی برو بگو ویزا می‌خوای منم ویزا گرفتم ویزا گرفتم اومدم ایران با پاسپورت سعودی کجا اینو برای کی تعریف کنم من به من میگن عجیبی شما به نظرتون آدم آدمی که اینا رو کشیده باشه عجیبه شاید عجیبه نمیدونم ولی یه چیزایی رو دیده. یه سری داستان‌های زندگیش این شکلی بوده شما شاید توی تهران اکباتان بدونی تا آخر عمرم تو اکباتان باشی شاید بوشهر به گوشه بدو نیا بیای بعدش هم تهران کار کنی هم بری آلمان زندگی کنی همه اینا داره که خطیو مثل خیلیو میره ولی من نمیم چند نفر میتونم ادال کنم با پاسپورت سوئدی به یه دلیلی اومدن ایران که الان من خوام دلیل رو بگم حالم خوب نبود سوئد یه دختری که یادم میاد گفتم هدا 2004 وبلاگ فارسی رو باز کرده بود اینجا برنده جایزه وبلاگ نویسی شد برین آما رو در میشه اینا که بعد همه آمارو در برن برنده وبلاگ نویسی اون موقع شد پیشم بلاگ بشه سایت دادن ش باشم حدیس شد خیلی از اون موقام هنوز حال خیلی داشت که داشت به فارسی مینوشت فارسی داستان می‌گفت. عاشق این داستان ها بود گاش هم بیام ایران که مجموعه عکاسی کنم اومدم هم اینجا عکاسی کردم خیلی هم تکن به اسم شهر ممنوع نگاه هم رو ا... من عکاسی نخوندم ولی عاشق عکاسی بودم و بعدام نمایشگاه گذاشتم همین مجموعه رو خیلی ازم خریدن این مجموعه که اسم شهر پنهان بود نگاه من به شهر ممنوع بود و شهر پنهان چرا؟ دو تا اسم گذاشتیم مراش چون بعد از اینکه میخواستیم نمایشگاه کنیمش گفتن آقا شهر ممنوع شبیه فوربیدنسیتی چینه تو که تو چین نبودی گفتم خب بکنم شهر پنهان نمیدونم واقعا اون موقع که من من عکاس که نبودم اسم مجموعه مون نوشتن استیتمنت نوشتم از نگاه من زنهای ایرانی توی ایران برای کسی که بعد از سالا بغیت اینجوری بود مهمونی میرن یه سریاشون همین یه سریا نوشته بودم ولی بیرون هجاب میکنن تا میان تو مهمونی بر میدارن عکسش بود با دوست پسراشون زندگی میکنن یه سری خیلی ها مشکل دارن ولی اینجوری هم دیدم داره با دوست پسرش زندگی میکنه من خیلی ور دیدم یواشکی سوار موتور میشن خود من یواشکی سوار موتور میشن و موتور سواری میکنم تا لا عکسش هم این اینستاگرام چون همینجوری هم به من میگن دیگه عکس موتور سواری من مطمئنا خط مستقیم داره اصلاست خب اصلا دلم میخواست گفتم به دلم میخواست اسم این پادکست رو بذارم وصل نیست وصله است همه جا وصله بوده خسته شدم از بس عجیب بودم بیا برگردیم به داستانی گفتم من اومدم ایران اومدم ایران مجموعه اکاسی. ما عکاسی کردم هم چیز بود خیلی بزرگ شد خیلی از این بیزی. من که اون موقع برگشتم سوئد من قرار بود اصلا سود نکنم برگشتم خیلی از همین سایتایی که الان خبر من رفتن اون موقع عکسای منو خریدن از رادیو فردا الان عکس منو داره نمیدونم خیلی از آدمایی که بی بی سی کار میکنه فلان کار میکنن چرا چون تو عکس ها من عکس یک دختر آزاد رو پشتبون دختر آزاد که لباس کوتاه پشت رو پشتبون چون جایی که ما میرفتیم آفتاب میگفتیم پشت بون بود عکس عکس چیدمانی بود خب یواشکی ووسری یکی رو دوستان دوستام برداشتم تو اتوبوس داش عکس بی‌هجا گرفتم چون گفتم آقا اینجا شال ما میافته خب دوست داشتم دوست داشتم که آنما بدونن که این یک چیزیه که شاید ادامه داشته باشه بعد از اون که اینقدر بزرگ شد به بچه قشنگ اکسایی من دار تو ایران دیده میشه شور کم در مورد سفرام نوشتن اولین مار ایدش بزنم رسی چیزی که خودم دوست داشتم همیشه دلم میخواست و میخوندم بلاگیرای خارجی که بودجه می نوشتن، بودجه واقعی که باش سفر رفتم من کاری نداشتم اون موقع اینا چقدر پول دارن من دنباری می کردم که 500 دلار برداشته رفته تایلند رفته ویتنام رفته هند 1000 دلار برداشته رفته چه میدونم بورا بورا مکزیک منم چند تا زبون بلادم عربی سعودی انگلیسی فارسی درسته اومده بودم ایران دنبال کارم گشتم تو ایران اون موقع من عکاسی عروسی میکردم عکس ادیت کردم. هر گونه عکاسی پولدارم چهار چارتا رو فکر کنم نمیدونم اسمش بگم یا یعنی. نه کنسرت عکاسی می‌کردم برای فلانی ترجمه سعودی می‌کردم به یه جای ترجمه انگلیسی کار می‌کردم خیلی خوش اومد شروع کمی وبلاگی رو باز کردن که توش هر چیزی رو که از بودجهم خرج می‌کردم تو سفر می‌نوشتم منم واقعا خیلی پول داشتم بک‌پکر سفر می‌کردم تکم خیلی از آدما که من دوباره به عنوان بک‌پکر منو میشناسم. پ باک ایران سفر کردن، هی hey, وبلاگ منو بزرگتر کرد، هی hey, بیشتر دیده شدم اسپانسر گرفتم فلان نمیدونم برند خارجی و که گوشی فلانی میداد به من گفتش که آقا ایوال پس برای ما اکسال به ما اکس رو بفروش ما کسثر رو دوست داریم داری اکس رو با یه گوشی رو میگیر به ما فروش فلانی به من گفتش که ببین این سفرنامه رو بده ما فلانجا چاپ کنیم هی hey, پول آوردم هی وچه با حال تازه فهمیدم یه کانت makerکر چیه؟ و من این ایمفلونس... چیز نبودم که من خودم رو اینفلوئنسر نمیدونستم اصلا می‌گفتم اینفلوئنسر چیه چون فکر می‌کردم اینفلوئنسر باید روزمره یه سرچ دیتا بده دیگه من معمولا اینجوری بودش که هی داستان رو جمع می‌کردم سری پست چیز می‌کردم استوری می‌کردم یا پست می‌کردم چون اصلا دوست داشتم داستان رو بخونم اسم براش می‌ذاشتم تهوندی داشت، هر چیزی استوری گذاشتم اینا این انجامید که سفر بیشتر بیشتررفتم سفرای بیشتر رفتم سفرهای بیشتر رفتم کم کمم نمیخوام بازش کنم که حالا بالا پایین میرفتم حالا رو این بد میش شد تاان می شد ایران هم حالا خوبب اینجا کمینیتی ساخته بودم کامیم کیا بودن آدمای سفر بروی ایرانی آدمایی که به سلیقه من خیلی نزی بودن تو تهران خیلی برام دوست داشتم شببا می شستیم کتاب خونی می کردیم دور همین می رفتیم من تو سیت این کارالو می کردم ها اصلا نمیگم نینار نمیشه تو سایل انجام داد بخش آبم من یه هم داشتم اونجا اون موقع که اینترنتم خیلی چیز نبود میخوام با یه مثال میگم چقدر دوست داشتم این فضای ایرانی رو کتاب فارسی هم تموم شده بود کتاب فارسی ود نداشتم دیگه کتاب های بابا هم خیلی سخت بود خیلی سیاسی اجتماعی بود فل من داستان میخواستم رمان فارسی میخواستم سوئید که کهسم اون خوب نشده بود که مثلا کتاب سویدی بخونم زبون دیگه هم بخوندنش که بعدا نبوده. یادم کتابون اینتر اینترنشنال سوید. چیست داشت؟ یه قسمت فارسی زبون داشت من اولش که شروع کتاب هم کتاب ها رو خوندن خیلی حال میدادید یه دفعه فهمیدم کتاب رو تمام میجینه که ابدید نمی کتاب خانوم محسود بهنود پیدا که کتاب خیلی بزرگ هم است دیگه شاید باور نشه اون دختر 19 ساله 18 ساله کتاب با این استیکر نوت که جدا میکنه جدا نکره بودم که اینا چیان مهمن جدا کره بودم که بیشتر از این نشه. بعد اگه اون روز دلم میخواست بیشتر رو بخونم برمیگشتم از, از اول از اول همین رو میخونم که کتابم تموم نشه عشق زبان فارسی داشتم اومدم اینجا خیلیا که من اول یادشونه یادش فارسی خیلی خوب نبود بابا هر کسی با چهار پ تا ز بیاد بالا بزرگ بیاد بالا بزرگ بشه همین الان هم ستی دادم <laughs> یعنی حتی همین الان هم که قما باید باهوش باشم که همه اینا رو برنامه ریخته باشم <laughs> که حتی من اینجا سودی بدم. <تصفيق> <تصفيق> ام... هر کسی اینجا باشه کم کم فارسیش فارسی سخت فارسی حرف میزنه. من اومدم اینجا یه این مدت میرفتم ده خدا فارسیات یاد میگرفتم با اینا. به زور رفتم با پاسپورت سعودی میرفتم می گفتم من خارجی‌ام. منو راه را بدین اینجا بذارین من فارسی بگیرم. خب آدم داستان سرایی که گیر میکنه حالش خوب نیست. یکی بهش میگه عراقی که بهش میگه تو ایرانی نیستی. دوست پسر سعودی داشتم. میفهمیدم با اون فرق میکنم آخه من ایرانی که نیستم سویدی هم که نیستم سال ها گذاشته. ولی سویدی هم نیستم من جوکای اینا رو چه نمیفهمم چرا وقتی نشون میدادم که خیلی خوبه ها زندگی خیلی خوب ولی چرا میرفتم خونه یواشه که باز آهنگ فارسی گوش میدادم؟ خب اینا برای من عجیب بود دیگه دلم میخواست تو همین فضا باشم من اون مسئله خانوم آهنگ ابی رو نمیدونم دوباره می سازمت وطن داریوشو. هر آهنگ دیگه که زادین من تو صد افسردگی دیگه گرفتم بعد از که این تجربه رفته آمد و اینا سفر رفتن و اینا گفتم آقا بیام ایران زندگی کنم اینجوری هم نبود که بگم بیام مستقیم ایران زندگی کنم اول رفتم نیویورک چرا؟ چون من توی اومدم ایرانی مجموعه عکاسی کردم به اسم زندگی دوباره کجا زلزله خیلی خوب شد. نما دانشگاه کلمبیا نیویورک قبول کرد برای من نمائشک سولو برگزار کنه و همه اینا رو بفروشیم این همه اینا دیتاش هستن برا در بیارن دیگه نمیدونم آدرس منو ولدان در بیارن اینا منو در بیارن ما نمائشک بود که همه عکس ها قاب شد خود دانشگاه پول چاپو داد اینا به هدف چی بود هدف این بودش که من عکس رو بفروشم اینم بگم که من دو بار عکاسی کردم اهر و یک بار سیاه‌سفید دفعه اول اومدم خونه گفتم خودت یادت نره تو همون بچه‌ای که مامانش دوبار مهاجرت کرده که چی بد وقتی رو نشونت بدن که چی اکس های مامان تو که هنوز داری میبینی قصت میگیره اون بچهه دوبین براش بخر کتاب براش بخر اصلا پول و جمع کن کسی که, کسی که مجبورشو که این اکس ها رو بخرم پولا رو که تو گفتی میری اینا رو خرج احر میکنی برو چهار نفران ببر البسه عکاسی براشون ميزه خودشون خودش اونجا رو مستند کنه هرجوری دلشون خواست سیاهه سفیده اون موقع تازه فیلمای کیاروستامی هم می‌دیدن که فارسی بهتر شده تحت تاثیر زندگی و دیگر هیچ رفتم این مجموعه رو عکاسی کردم با های رنگی توی فضای اه... چیز ویرا بچه ها، فقط با بچه ها هیچ بزرگی توی اکسای نیست نمایشگاه برگزار شد همه اومدن روز بر نمایشگاه مدیر اومد گفت من تازه فهمیدم اینا رو میخواین برای ایران بفروشین خبرش ماده بیرون ایران تحریمه ما نمیتونی اینا رو بفروشین کنسله گفتیم اوکی آقا من که اولا زدم زد... زیر گریه بعدش گفتم که اوکی نمیفروشین نمایشکا که میتونه اجرا بشه ببین خیلی گذشت تا من تونستم کابی پیدا کنم یک دختری که ترسیده بود از بقیه یه جو... دختر دختربچه‌ای خیلی اعتماد کنه به آدم اینها رو بهش بگه همه این چیزا رو من هیچی نگفتم هیچی نگفتم داستان زندگی که برای اون تعریف میکنم واقعا اینجوریه که بیشتر بگو چقدر جالب چی مگه میشه یعنی حتی خود بعضی وقتا روانکاوا هم یادشون میرفته پروفشنال بشن خب و, و و, و میومدم وارد زندگی من میشدم و من باشون رابطه رو قطع میکردم خیلی جالبه تا اینکه بالاخره یه روانکاوی پیدا کردم همین الان دکتر سلام بهش میرسونم چون احتمالاً میدم برش بفرسته که بالاخره زندگی من عوض کرد سه سال مدابه من دارم میرم پیش ایشون بعد از فکر میکنم 50 تا روان کار سه سال مداوغه این خانم به من کمک کرد یک الان دوستای منو بشوین کسی که فکر میکرد لحجه عربی داره و میترسید صداش رو بزای جایی کسی که بلاگر از همه از استفاده میکنه من چه نه وقت از صدام گوشم نه از خودم ویدیو گذاشتم بلاگر خب بلاگر دیگه میتونست همه چی استفاده کنه بهم به داد که چرا از میترسیدم و هنوزم شاید بعضی رو بترسم و تو این مدت خیلی چیزای دیگرم کمکم کرد کمکم کرده حتی بفهمم که من قدرتام تو چیه چجوری حتی بیزینس را بندازم کمکم کرده حتی مثلا داشتم وقتی که فکر میکرم شک میکردم به داستان فمتریپ اول که کلی فش کردم و رفتم میشه این گفت خب چی کار مگه کردی؟ خودم نفهمیدم چی کار کردم ولی به هر حال خیلی کمکم کرد که از فمتری به اول بیام بیرون خیلی افسرده بودم تازه بعد از فمتری اول اصلا دیگه استوری نمیخواستم بیزارم تو زندگی خب تا اینکه این, این کمکم کرد از افسردگی از اون فشار بیان بیرون روانکا واقعا داره زندگی من عوض, عوض میکنه ولی هر روانکا من نمیدونم آدم چه چجوری باید یک خوب خودش خوبه خودشناسایی چون هر کسی هم شیمیкали با یک روانکاوی میتونه صحبت کنه یعنی الان دلت میخوای یا دوست داری یا اجازه میدی که در مورد مثلا دو تا یا یک تا سه مهمترین بحرانهایی که به دلیلش 50 تا روانکاو عوض کردیم حالا سه سال روی روانکاوی آره، فوکوس کردیم بگی یکش اینه که ببین سفر رفتن یه وقتایی هاویه یه وقت یک که تبدیلش کردی به بیزینس مثل الان من یه وقت حابی بوده مثل وقتی که عادی سفر میرفتم یه وقت اولا بوده که یک ریاکشنی بوده یک, یک اعتراضی بوده یک اعتراض بوده به نمیدونم چیه دنبال ب هم شاید میگشتم در به در دنبالوطنم بودم من اینجوری رو شروع کردم سفر رفتن تازه روانک و اولی من به من گفت تو قاتون بود ختو بکشی برو تو سفر بکش منم یه ذره فاض اینو رو که قول تو سفر میرم می من همیشه سفر میرفتم ولی تو همه سفرام دوباره شهرم بودم. هنوزم نمیدونم که آیا ایران یا تهران شهر و زنجای زندگی منه یا نه. ولی الان هفت ساله که درگیرم کرده. اون ستاره دوباره به ترتیب می. یکیش سفر بود. یکیش افسردگی‌ها گاهی سکونت یا بود. بود یا سفر؟ سکونت. سفر بود. و سکونت دلم میخواست ساکر بشم. دلم, دلم خواست شهرام پیدا کنم. در واقع سه تا چیزی که میشه خیلی راحت داشت گفت هویت یکی از ترس بود که کم, کم, کم حلش کردم به همه دوستان کم کم شروع کردم گفتم گفتم بچه من یک قسمت عراقی دارم یک قسمت عربی دارم تازه که مامان مامانم به اردونی هم شاید برگرده که حالا اونو داستانش جداست اونو کاش کتاب کنیم که او خودش که کتابه واقعا خب من این مشکلی به شاید اسم هویت داشتم دنبانش میگشتم دیگه کم کم شروع کردم با این ترسم جنگیدم به دوستان میگفتم یا توی یک جمعی وقتی داشتن در مورد عربا یه چیز بدی میگفتم من یادم نمید شما الان نگاه نکنه شعرهای عربی قشن شده تو اینستاگرام پخش داره میشه پنج سال پیش یادتونه کاش مثلا یادتون بیاد که اون موقع چه فشار روی چیزی بسم عرب بود عرب سوسمان خوب برای شما اگه آشنا نیست آدم عجیبی هستین در ایران تو جمع‌های دور همی که می‌رفتیم یه دفعه یکیشون می‌گفت آره یارو مثلا چی عرب عرب و دماد عربا یک حرفی می‌شد بعضی وقتا برام جدا خدام کر می‌ریختم می‌گفت مثلا این بحث افغان‌ها رو چی می‌شد می‌رسید به عربا بعد تموم کشون می‌گفتم آره البته من خودم عربم و مشکلی ندارم ولی اون ریاکشن دیدن آدم‌ها اینجوری که چرا من این با این آدم‌ها این کارو می‌کنم چرا واقعاً تو آخرش بهشون میگم؟ چرا باشون یه بازی داستانی می‌کنن رفتم تراپی پیش برای این که ببینم آقا این مشکل عرب بوده جالبی که باز خودت تو عرب نمیدونی من خودمو عرب نمیدونم مثلا عربی بلدیسم اونقدر عربی در حدی بلدم که وقتی میرم سفر کارامو را میندازه بلد نیستم کتاب عربی بخونم میگی کسی که تا 14 سالگی نمی دونم مثل بقیه عربی خونه و با مامان با باباش تو خونه عربی حرف میزنم میگی میتونه کتابهای عربی فصیح بخونه نه در حد شاید یک بچه بتونم عربی رو بفهمم که بخونم و شما میدونی عربی حرف زدنش و نوشتنش دو تا چیز متفاوته مثل فارسی نیست حالا بماند سه یکیش این بود هویت، یکیش شهر یکیش هم دلم میخواست حالا بهترش میخوام برم برام سراغ بقیه چیزای بازم چون حرف دارم خیلی دارم میخوام حرف بزنم مثلا این قسمت یکی پادکاستم و این آخرین باره که در مورد این سوال حرف میزنم ولی قسمت های بعدی تو سفر میخوام در همین چیزا حرف بزنم همین ستوری که الان پرسیده پرسیدی چون همین رو نکنیم موضوع داستانم پیدا کردن شهر زندگیم پیدا کردن ها چیزهایی که ربط داره به هویت خیلی چیزها ربط داره به هویت آدم تو وقتی یک کسی ببین کسی که توی کشور شاید بیدین یک کشوری که اصلا چیزی دین وجود نداره به دنیا اومد باشه هیچ ساین دینی رو نمیفهمه درسته؟ حتی کسی که توی کشور دینی اومده جا خیلی وقتی سایت دینی رو نمیفهمه شما همین الان پاشی بری تایلند میری معبد با لباس‌های معبدی اونجا عکس میگیری و نمیدونی که در اونجا چه چیز سیاسی یا اجتماعی وجود داره چون نمی‌شناسی. های واد بری ببینی چرا اینجوری میشه؟ خب سوال بیا بیا برسیم به چیری بیا بیا برسیم, خودشنو برسیم. خودشنو برسیم آره بیا بیا بپرسیم اصلا چون دوست داشتن نموده فهمچی پر فزرن دیگه میگن چرا میای ایران زیبایی ایرانو شو میدی خب اضافه اومدم تو این بحث اشکال نداره بس حرفو حرف شد ولی دارم این اینو بگم شما به عنوان یک شنونده یک بیننده که داری الان اینجا یک عالم آدم داره من هستن دیگه من بهتون پیشنهاد میدم پاشیم بریم کوبا اگه یه ذره تاریخ خونده باشی، یک ذره ها رو بلد باشیم میدونی کوبا یکی از جذاب‌ترین کشورهای جهان برای رفتن. کشوره کمونیستی که 50 سال حتی اینترنت نداشتن. هنوز اینترنت نداره. اگه قرار بود آدم مردم دنیا ماها همه با هم کمک کنیم، کره شما نجات پیدا کنه، چرا نکردیم تا الان؟ اگه رفتن نرفتن من ذره میذاره روی زندگی یک بچه‌ای مثل خود من که بزرگ شده به اتفاقی یه روز یه وکیلی برگشته به بابای من گفته بچه ها دارن اونجا میرن از گشتنگگی تو که دیگه کار نمی کنی اومد اینجا اینجا خررج چقدر بگی بادم برگردی اگه نمیتون خاانواد بادر... یعنی نمیتونن خانواد بیان برو پاسپورت سوودی زن رو بگیر باش بیاین برو پاسپورت عراقی زن بگیر باش بیا سوئد این یارو حتما خلاف کردی به من وکیل ولی به نظر زندگی یه سری بچه نجات داده واقعا نجات داده من نمیدونم شاید ما خیلی آرمانگرايان هست که بخوایم بگیم که من اصلا نمیفهمم چهره بدی ایران خوب ایرانه من چون از نظرم توریست توریست حالا دوباره بگم به کوبا من ببرمتون کوبا بهتون بگم میدونین چقدر کوبایی یا با تک تک این ماشین رنگی که دیمیا حالشون بده آیا با اکس نمیگیریم صد درصد اکس میگیریم آیا بگم اگه بهتون بگم که ولی خوزاخترین درامده کشور کوبا توریسم میرین معلومه باید بریم اگه ما میخواستیم کمکشون کنیم چرا تا الان کمک نکردیم اگه آمریکا می‌خاست کمکش کنه چرا تا کمک نکرده من اصلا چیزهای سیاسی نمی‌فهمم اصلا آدم سیاسی نیستم متنفرم از سیاست از همه چیزهای به غیر از یعنی واقعا برای من همه چیز پدرام زیبا بوده به غیر از اعتقادات سیاسیش و حرفهای سیاسی که تو خونه میزده چه با این بوده چه ضد این بوده چه در طول زمان تغییرم کرده یه ما یادم یه مدت میگفتش که مثلا چه میدونم باید عجب کنی صوت الان اینجوری که من ربطی نداره پس تغییرم کرده لهجهم دویمم چرا داره بوشهری میشه فکر کنم چون تو جلو نشستی ولی <تصحیح> <تصحیح> چی داشتم گفتم راست یادم کوبا ماشینا کره شمالی کوبا به عنوان یک مقصد توریستی من نمی خودمون رو میخوام با کجا مقایسه کنیم با سوئیس سوئد نمیدونم کجا م... یعنی به حال هر جایی برای هر صنعتی یک چیزی رو میخواد دیتا میخواد دیتا ما کجاست من برم بعد از این با دییت اونجا این خوبه مثلا بگیم آقا برو شبیه ترکیه سایکن عکس چون مشکل اینا نیستش که توریست نیاد دیگه مشکل آاده که میگن چرا این تصویر ها نشون دادی و من خیلی جاشو قبول دارم واقعا چون آدمی هم که هیچ چ هم من خیلی جاشو قبول دارم چون آدمی هم که دلم نمیخاست هیچ وقت کسی بهم اجبار حجاب بده همون قدی که دلم میخواد وقتی میگم حجاب اجباری منظورم اینه که نه کسی حجاب از سر مامانم برداره نه کسی به من به زور حجاب بده ولی فعلا اومدم توی کشوری که کاری نمیتونم توش بکنم توی این منزی سعی کنم یه توریست یه کارایی بکنم خودم گفتم یه سری چیزها یه سری عکس های محجبه ای که گذاشته بودن و خودم دختر ایتالیاییه رو که دیدم استوری گذاشته یه شالوشی گفته این حتی جوابش در مورد حجاب اینه که حتی جلو آفتاب میگه قشنگ یادم من معذرت میخوام گفتم دایی اس خب ضد آفتاب بزن یه لحظه خفقان خودم یادم افتاد و فکر میکنم زیر دو دقیقه رفتم بهش گفتم و برداشت زیر دو دقیقه ولی اسکرین شات گرفتم و پخش میکنن آدما نامردن آدما کامنت من زیر اون پستی که دختر ایتالیایی یک لباس اونم میذارم توی این وبلاگ بعدم ببینم پوستر رو میذارم یک لباس صورتی بلند آستین بلند حجاب روی سرش گذاشته داره تو بازار میچرخه رو رو یکی که کیک بپرسید که ما چرا پس نمیتونیم لباس بپوشیم گفتم والا میتونید لباس بپوشید این حجابه دیجابی شما از فکر کنم بق... مثل خیلی ها مثل خود من از نگاه های دیگران ها میترسین خیلی وقت‌ها وگرنه شاید واقعا بتونیم یعنی من خودم به شخص دیدم همین الان شما همین کافه ها برین همه پیرم هم میپوشن حالا من دوباره اون ویدیو رو میذارم ببینید من این آدمان نامردن اومدن اون کامنتو برداشتن اگه راست میگن این کامنت اصلاً شو نشون چرا دو تیکه نشون میدن انداختن روی پیر... یک عکسی اک... از من که پراید در اومده خب حالا نمیدانم کی گذاشته اصلا اونوها کی با گوشیش گرفته که یک اینفلوئنسر هندی مون گذاشته خب معلومه برش براش مهمه که چقدر چقاصینه من بیرونه و چقدر من بهش فرش دادم که تو اصلا من تو پیج شخصی خودمم هم... من تو پیج شخصی خودمم عکس با سینه باز ندارم اگه اینجوریه که همه کسایی که تو اونهاشون عکس لو گذاشتن آقا برام بگیرم. ولی اومدم اون کامنت من رو این گذاشتن خبتان شما هر جدتون میخواستون ولی این نوکالر no آیدی هم اگه فکر کامل من میرم بهش میگم ببین اگه من کاری کردم بریم پیدا کنین بیارین نشون بدین منو بگیرین من اجازه دارم تو خونم سینما و بندازم بیرون من اجازه دارم توی فضای شخصی با دوستام مر دلم بخواد معاشرت کنم من میرم تو کبیر عکس بگیرم با من نمیتونم مشکل حجابو تو ایران حل کنم ولی رخ... بعضی وقتا دا دارم میخواد دلخوشای کوچیک خودمو داشته باشم اکثر میذارم ازش این همه بلاگرام میذارن دمشون هم گرم میذارن اگه نمیدونم بعد از این میاد منو میگیرن ولی به نظر من هر کسی که داره برای یک هجاب اختیاری میجنگه بود هر جور دلش میخواد عکس بذاره اگه تو فکر میکنی به قضاوت میشه که چادر سرت کنی چون دوستات همه بی حجابن خیلی دل اشتباه میکنی که حجابتو سرت نمیکنی عکساتو بذاری چون تو همون قدری به ما ضربه میزنی که ما میخوایم این کارو بکنیم اگه آدم آزاده ای هستی تو هم باید برای این بجنگی که یکی که محجبه است بشنگین نمازخونم خودم یه دوستی دارم یه دوست محجبه دارم و یه دوست نمازخون دارم دوست نمازخونم بعضی وقتا میگه میشه توی جمع نگی مثلا یه چیزی رو مثلا بعضی وقتا خیلی آدم حرف بزنیام داشتم مثلا داستانای فلان سفر رو تعریف که فلانی رفت نمازش خون خب الان میاد گفتش که من اونو نگجایی و من کنگین شدم تو جمع ما هم اینجوریه پس پسر نماز میخونه چرا با تو جمع به ما وای ما کجایی ما همه هم هم یه جمهوری اسلامی کچک تو خودمون دوستای من غلط میکنن بگن فلانی نماز میخونه دوست داره میخونه من نمیخونم اون میخونه منم دارم برای همین میجنگم که یه ذره اونی که خودم دوست دارم هانوز حجابو میبندم بالا سرم گردنم بیرونه. اگه از فردا من اینجوریام میگیرین دیگه بگیرین دیگه من نمیتونم کارش کنم. فوقش از ایران میرم دیگه میگین من که هنوز وطنمو پیدا کردم گویا. من یه عراقی سوئدی پاسپورت بده، حالا یه پاسپورت ایرانی هم دارم. شو مگه اینو نمیگن، مگه هشتگ عراقی نیست من میرم عراق اونجا حجاب نیست. من میرم عربستان، حجاب تو با عربستان مشکل چیز دیگه‌ای دیگه دارم به نظر خودم. غلط کرده ایرانی رو رو نویده که بشه اعتقاد دارن خدا یه سالی چقدر شما الان بحث این فمتریپ و این اکساپی شما چقدر روی خروجی بلاگر ها شما تأثیر بازه شما الان یه چیزی میگی من بهشون گفتم پاک کنن آیا توی انتشار این هم شما چیزایی؟ ببین ما قرار نبوده هیچ وقت هیچ چیزی داشته باشیم هیچ نظری داشته باشیم بلاگر ولی یه وقت هم از این وقی می هم اون وقی می ترسیدیم. فلانی اکس بیه جواب می گویم با پاک میام منو میگیرن. خب اکس نه سنا فلان استینه. اون یکی هم هجیبش اون یکی رو واقعا مشکل خودم بود. بهش گفتم میشه پاک کنی. خودم مشکل دارم مایه حرف دیگری یعنی نیست. جل آفته او میگیرم. میدونی ما چک گفت و واقعا میگه I didn't know. I'm sorry. و کجا بدونه؟ مگه تو مشکلات من در تابت رو میدونی. ولی حتما میری اونجا عکس ت... تونی هم از مانکا میگیری ما کجا میدونیم چند نفر اونجا دارم به زو مانک میشن اصلا من نمیدونم به خدا نمیتونم نرافتم چطط من در مورد 140 تا کشای سه چیزا میدونم و ببین داستانش این چیه ما رو این هیچ کنترلی نداریم از اولش اومدن توی استو... توی فهم به اول ما اومدیم اینسه انجام دادیم آقا مثلا بیا بازار وکیل فرش کن حالا من نمیدونم چه مشکلی ولی بعدش میگم آقا به این کارم نکنیم. بیا این سفره های غذامون رو بندازیم جایی که اینا مهمونمونم مثل هر مهمونی اومدن ما خیلی جا مشکل رستوران داریم. خیلی جاها، ما توی یه از تو رستوران خوب و خوخش که ننی بردیم. توی از ما آخرش هم مجموع شدیم شده میکاری کنیم که توی هر کدومشون توی بود تلاش غذا بشون بدن. مشکل غذا داشتیم روی یکی از بامان گفتیم آقا آفلانی توی یک آشپز خیلی خفنی واقعا یک آشپزی که تو ایران کار میکنه که دیگه آشپذیم کنیمه که دیگه به جای بسته یا کسی نخد کمک کنه. بیا تو دمت گرم بیا چیز کن برا ما یه سفره بنداز فلانی کارخونه پریدار بابا بیا اسپانسر اسپانسرمون شو ما دارین کار قشنگی میکنیم فلانی تو بیا اسپانسرمون شو ما پول بیلیتای اینا رو در بیاریم من به آزادی بیان اعتقاد دارم تو میتونی منو نفط کنی دمتام که خیلی چیزها رو بهش قبول دارم مثل همین داستان اینکه آقا فلانی نمیدونم این نچینین نچینین زیبا بشه حداقل بیا ایران واقعا نشون بده. ولی من نمیتونم بگم کجا بر عکس بگیره شما برین کریستینا رو نگاه کنین پیجشو کریستینا یه عکس دقیقاً شبیه عکس ایرانش توی مسجد سن پترزبورگ گرفته قبل از اینکه بیاد ایران این عکس‌ها رو میذارم ببینین همون فاز یه دامن بلنده و اصلاً نمی‌دونه فرقه می اومد ایران کریستینا گفت اه مام بزرگم منم اینجوری میبنده تو های کاتالیک کاتولیک کاتولیک کاتولیک کاتولیکا همش یه چیزی مونده به سرشون دیگه گفت ع فر بعدشم هم خیلی کوتاهی کلاه میذاشت سرش. من بهش نگفتم سرد نکن. واقعیتش اینه که تو چرا نگفتم سرد نکن یا بکن یا ببن چه چرا؟ براتون این مثال میزنم تو فمتیه به اول ایریکا اومد بریم سوار پرواز بشیم که برگردیم از شیاز تهران کلاه گذاشت سرش کلاه بزرگ عکس و ویدیوش هست توی فرودگاه از شخص هست میذارم من گفتم من بهش نمیگم. به حال بهش میگن دیگه در کمال ناباوری از جلوی دو تا گیت رد شد هلو هلو های به من گیر داد به اون گیر نداد و راستش رو بگاه هم سوختم مگه اما مگه من نمیفهمم من هیچ سیاست دیگه نمیفهمم اگه باید هجاب کنیم که همه باید هجاب کنن اگه نباید بکنیم غلط کردیم به اون برزیلیا گیر نمیدی. منم خودم، منم خودم گیج شدم. اینا رو که میشنوام خودم گیج شدم. ببین من خودم نمیخوام اجازه سرم کنم توی فرودگاه. ولی سرم می کنم چون گیر میدم بهم. نمیذونم سوار شم. من تو راه چند بار گشت ارشاد بردم میگه ولی من نمیدونم آیی از شما میپرسم شماها کی گشت ارشاد هر دفعه میین استوری میکنین؟ شماها که ماشینتون اس ام اس میاد براتون دونه دونه تون استوری میکنین؟ بعدشام چقدر از روزمره من استوری دیدین که میگفت اینا رو نمیزاره. بیشتر اکس های من تو سفره. برام پستای منو ببینین چند تا پستش مال ایرانه. خب من بلاگر سفر بودم. هنوزم بلاگر سفرم. اگه فکر می‌کنین جواب سوالات در مورد این دادم که من روی اینا تاثیر دارم یا ندارم، اگه فکر می‌کنین روی این مثالایی که زدم میتونم بفهمن، باشه. چون دارم خیلی حرف زند دهن خوش شد. دیگه‌م در مورد به نظام دیگه هر چی صحبتی کنم؟ چی هرچی, هرچی گفتم واقعا. اگه می‌خواید در مورد صحبت کنین بکنین، چون دیگه آدم آخ دیگه باشه. حرف نمی زنم. نه نه حرف نمی باش. ببین اینم بذار بگم بذار مصند خودم شروع کنم. با یه جوک دیگه شروع کنم. نه اولش گفتم خیلی لوس شدم. دیدی واقعا من, من اینجا نشستم توی کمد اتوبوس رد شه. باور میکنید؟ من اومدم ایران. اوایل اومدمم به ایران، پولم که نداشتم، بک بکی، عشق دیدن ایران بودم. کسی که عاشق سفر، عاشق دیدن ایران نیست، کسی که فارسی دوست داره، دوست داره ایران گردی کنه، پول اون نداشتم، گفتم دیگه با ادیت. یه دوستی داشتیم فیلم بردار اسمشو میگم ولی بعداً اسمشو شاید بی بذارین دو تا تا الان جایزه تصویربرداری گرفته. خیلی خفنه. آقای سامان لطفیو خیلی هم دوستش دارم، تصویراش واقعاً خفنه. این دوست غیر نزدیک من منو با دوست آرژانتینی‌مید. دوست آرژانتینی یه پسر آرژانتینی بی بود، وید. یک دم. اسم آدریان، یه دوست آرژانتینی داشتم اسم آدریان اومده بود ایران رو بگرم، مثل من پول نداشت برگشت گفتش که ببین، آدریان، موضوع داستان ایران گردیم ما میشه با هم بریم چون این انگلیسی حرف میزنه خیلی قشنگه که با آدم ها انگلیسی حرف بزنیم آدریان هم دید خرج و سفرش در میاد، یه ماهونیم قرار تو ایران بگردیم گفت آره، همه چی گرفتم چیز تا چی باید میگرفتم برای فیلم برداری تو جاهای قرار بود بریم کجاها قرار بود بریم جاهای قدیمی ایرانو ببینیم مثلا تو تبریز ایلگولی نمیدونم کلیسای سنت صبورس همه اینا هم توی اون مستند هست میتونم می برم از قرار نمو مستند باشه قرار بود یک داستانی باشه شبیه مستند داستانی بهش میگم فکر کنم که یک آقای آرژانتینی اومده اینجا داره ایرانو میگره زبون انگلیسی و بقیه حرف میزنه شب قبل از شروع سفر آدیان ترسید گفتینو قرارو چیکار کنین کجا اون عقل داشت خداییش من نداشتم چرا نداشتم آجن... آ... آدیان نیومد سر کار فردا یعنی گفت من نمیام سفرو من همون دفعه من دو دوتا دوستم اینو من معرفی کردم اینم دوستم که تاثیردار خفنیه خب گفتم که به درد میخوره من بیام بعد ایده هم دادم یعنی تیفون گفتم مثلا اینوسیو اپرزانم چون اون موقع فارسین خیلی خوب نبود 10 ساله به شما داستان لا داشتم اصلا میترسین این داستان خودم من به عنوان یک کسی که اصالتا ایرانیه میام اینجا ایرانو میگردم با بقیه‌ام اینجوری صحبت میکنم شما اینو فیلم بگیرین دیگه همینا من واقعا از آوجان گرفتم یک دو سفر مجانی هر کی بهش بدن میره مخصوصا یه دختر کوچولویی که پول نداره و کجا میدونه نمیدونم این کیه اون کیه فلان کیه؟ اصلاً کی واسه اینا کین من کجا نمیدونه کین خو باز میگم دیگه مثلا من, من اینجا نشستم منتظر اتوبوسم <تصفيق> ببین من اول این پادکست گفتم آخر این پادکستم میگم من هدا رستمی یا هدا جوار کریم دوتا آدم در یک آدم چرا چون هر آدمی یه زندگی شخصی داره یک زندگی آرتیستی زندگی بلاگری هر چیزی بلاگر میمونم احتمالا چون دوست دارم این کارو یا داستانسرایی میکنم این برد. یا اصلا دیگه اینو بیخیال میشم از یه راه دیگه این نمیدونم داستانسرا میمونم برای معاودین ایرانی میجنگم از این به بعد همچنان تو توریسم کار میکنم چون این کارو خیلی دوست دارم همچنان احتمالا اگه اتفاقی برام سفر میرم سفرام هم شیر میکنم دیگه خودتان میدانید مملکتتان <تصفيق> چیزی مونده بپرسی؟ چیزی مونده بپرسیم؟ من فکرم خوب تمامش آمش کلیفت، واسه بپرسم که اگر برگردی ده سال قبل باز برمیگردی ایران در روز به دوستم مسج دادم که به نظرد بریم یه جایی دیگه زندگی بی کنیم انگر از جمله خودم گریه کردم توی <تص> خونه نه سا کمی نکنه مجبور بشم از ایران برم امین الانش خیلی جزم باش نکنه مجبور بشم از ایران برم ولی حالا, حالا مثلا اینو نذاری لطفا که فکر کن من سیاه نمایه ولی ببین دلیلش این نیست که من عاشق چیزم من احساس می کنم من رو اینجا دار پیدا می زبانم فارسیه من به فارسی خواب می بینم من به فارسی خواب می بینم اگزام کی بمصوی دی حافظت یادم میاد که بین خابی داری فارسی جوابشو میدادم یعنی من زبونم فارسیه هیچ کس از این ادمای که داشتم شو شاد باشم ده نفر 50 نفر 100 نفر مثل من مشکل زبان نداشته فکر کنم همه ادمایی که دو زبونهن افتخارم شاد بکنم به زبونشون بچه‌م اسپانیایی انگلیسی حرف میزنه من توی خودم و توی خانوادهم افتخار نمی‌کردم چون ادمای ایران ایرانی‌هایی که بهشون میگم هموطن همیشه مورد تحقیر منو قرار میدادن به زبان عربی همیشه حتی حتی بهم به شتم میدادن از پاسپورت سعودی من سالها پاسپورت نداشتم تا اینکه پاسپورت سعودی گرفتم سالها ولی همیشه خجالت میکشیدن دوستانم به من میگفتن فلان کشور خب خوشباهار تو با پاسپورت سعودی می خجالت میکشیدی درد میکشیدم جواب نمیدادم از روی درد بود نمیگفتم داستان از روی درد بود چون تمام بچگیم آزیتم کردن. ولی اذیت کردنم حل شده به نظر خودم. این همه تراپی رفتم، این همه پول که خرج کنی حالا نشی بخوام؟ دیگه اذیت نیستم و به دل نمیگیرم، غمگین شاید بشم چون تو میتونی غمگین بشی. ولی دیگه زندگیمو تحت تاثیرت نمیخوام قرار بده. من همین الان دارم میبینی دارم میگم زندگیمو نمیتونه دار... یعنی تحت تاثیر که قرار میده؟ آزاد میشم. الان دارم آزادتر میشم. آره، آز... آدم آزادتر از چرا حرف نمیزدی این مدت می ترسیدم لهجه عربی داشته باش، چون دوستای خودم یادم میاد رضا همینا میگه خوب میگه خرو ببا که خرو میگه خرو لهجهی داشت منوز کجایی بود و من شاید از نگاه اونجا بود که این لهجه بامزه سوئدی عربی ولی اون دختک کوچولوی در عمر می ترسید لهجه عربی داشته باشه. می ترسید مسخرهش کنن. من حال تک تک دوستای افغانم تو ایرانن که فکر میکنن لهجه دارن با باید. افغان چرا؟ تک تک دوستام که میان, ایران از... میان تهران از مازندران، از تبریز، از کردستان ترجایی. خب تک تکشون که دارن سعی میکنن لحجه رو تهرانی کنن قمگینشون میشن. قمگین میشم چون یاد دختر کچولوی میفتم که یه شبیه خودم که دوست نداشت عربی ولاد باشه. دوست نداشت عربی ولاد باشه. اگه برمیگشتم به اول بچگی می گفتم کاش با من فقط یه زبون حرف می زدیم